ما اهل منطقی ما حکومتمون حکومت استدلال است قوانینمون هم قوانین مستدل است معارفمون معارف استدلالی است موازه سیاسی ما موازه استدلالی است ما دولت ایالات متحده آمریکا را دولتی غیر قابل اعتماد می‌دانیم. دولتی خودبرتربین، دولتی غیر منطقی و عهدشکن، دولتی سخت در پنجه تصرف و اقتدار شبکه صهیونیسم المللی ما دولت ایالات متحده آمریکا را دولتی غیر قابل اعتماد می‌دانیم. 60 سال از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردی که با آمریکایی‌ها مسئولین این کشور اعتماد کردند، ضربه خوردند. یک روزی مصدق به امریکایی ها که اعتماد کرد و اونها تکیه کرد آنها رو دوست خود فرض کرد ماجرای 28 بولاد آمل بودتا که با چندان پر پول آمد تهران و پول قسمت کرد بین حرازل و که بودتا رو راه بیاندازه آمریکایی‌ها. ما دولت ایالات متحده آمریکا را دولتی غیر قابل اعتماد می‌دانیم دولتی خود برتربین آمریکا احتیاج دارد در سطح دنیا دولتی و حکومتی و کشوری وجود نداشته باشه که ابرقدرتی او را عملا زیر سوال ببره نمیتونه تحمل کنه ملتی رو که از تهدیدش نمیترسه و تطمیهش حریب نمیخوره دنبال سیاست های دیکده شدهش راه نمیوفته سیاست مستقل دیدر قیب و رو آقا بالاسری رو نمیپذیره ما دولت ایالات متحده آمریکا رو دولتی غیر قابل اعتماد میدانیم دولتی خودبرتربین دولتی غیر منطقی و عاع شکن، ما دولت ایالات متحده آمریکا را دولتی غیر قابل اعتماد میدانیم دولتی خودبرتربین، دولتی غیر منطقی و اهد دولتی سخت در پنجه تصرف و اقتدار شبکه سحیونیسم بین المللی جمهور آمریکا میگوید که امنیت اسرائیل خط قرمز اوست این خط قرمز را چه عاملی ترسیم کرده است منافع ملت آمریکا یا نیاز شخص اوباما به پول و پشتیبانی های صهیونیستی برای به دست آوردن کرسی دومین دوره ریاست جمهوری تحریم‌ها عامل روی آوردن دولت ایران به مذاکره با آمریکا است. این صحبتی بود که رئیس جمهور آمریکا بعد از دیدار با نخست وزیر رژیم سه‌حینصی، بعد در جمع خبرنگاران بیان کرد. اوباما گفت: من و نتانیاهو درباره این موضوع هم عقیده هستیم. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر همان عبارت تکراری خود را تکرار کرده و گفت: درباره ایران همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. به دولت آمریکا اعتمادی نداریم به مسئولین خودمون اعتماد داریم خوشبین هستیم از آنها می خواهیم که با دقت با ملاحظه همه جوانب جوانه ها رو درست بردارند محکم بردارند منافع ملی رو یک لحظه به فراموشی نسپرند